امروز اندکی درباره تجربه بنیادی در تفکر فلسفی صحبت می‌کنیم. تفکر فلسفی بر پایی این تجربه در شناخت است که گوهر آن چه می خواهیم بشناسیم یا میشناسیم جوزان هم هست که شناختیم این تجربه ی فلسفی را ما در خود عرفانمان هم میابیم در اونجا هم این تجربه شده است که به خوبی میشود به یک فلسفی زنده انتقاد داد از اتار این را عبارت بندی میکند که هر چی ما صورت سیمور رو بکشیم همیشه نه آنست یا جز آن است این هست ولی جز این هم هست یا مولوی میگوید آنی و چیز دیگر این و و به عبارت دیگر می شود گفت بلی ولی ولی این هست ولی این نیست در تفکر فلسفی شناختن و ناشناختن دو چیز دو گستره از هم بریده نیستن بلکه دو گستره پیوسته به همه نقاش سیمر را میکشد، ولی در پایان صورت، در پایان صورت دادن به سیمر در که سیمر چیزی جز آن است که کشیده است غیر از آن صورت است که کشیده است سیمر در فرهنگ ایران مرغ رنگارنگ و هزار رنگ و هزار صورت است سی تیف است سی کریستال یا منشور است احساس این که این سیمرغ ما امروزه مفهوم خدا را با مفهوم انسور و واقعیت از هم جدا میکنیم. در پرهنگ ایران دو سیمرغ سیمورخ نخستین انسور در درون هر چیزی بود. خدا، المنت بود، خدا انسور بود. این برای ما تعجب آور است، ولی این است که این مفهوم که سیمورخ رنگارنگ است، هزار صورت هست این در هر اون در هر چیزی در هر جانی در هر انسانی پیکر به خودش گرفته احساس این که من به شناخت حقیقت رسیدم بلا فاصله با احساس این که حقیقت جز این شناختم هست گره خورده است جز این هم هست این است و چیز دیگر هم هست بلی به این شناخت میگویم ولی حقیقت چیز دیگر از این شناختم هست شناخت از حقیقت هیچگاه با حقیقت این همانی نمیابد ما همیشه یک رویه یک رنگ از این حقیقت رو در شناخت خود ما داریم شناخت از حقیقت همیشه شناختی از رنگی از صورتی از آن هست. انسان در شناخت حقیقت همیشه در راه است. حقیقت چیز صاف و همباری نیست که من تماشش را ببینم. یک جا بیستم و پهنای حقیقت رو سراسرش رو ببینم. حقیقت سطحی که تا میخورد شناخت همی... حقیقت همیشه به تاخوردگی برمیخورد و ناگهان در این تاخوردگی دچار شگفت میشود شناخت زندگی شناخت هر پدیدهای در زندگی شناخت اجتماع سیاست با همین ها و شگفتها کار دارد سیمور در فرهنگ ایران یک پدیده فراز یک وجود فراز آسمانها نبود بلکه نخستین انصر نخستین ارکه در درون هر چیزی بود و بیجگیه گوهری این نخستین انصر این است که تا تاریکه است واحد است وحدت دارد تا کسی او را نمیشناسد توحیدی است ولی به محض اینکه پیدایش یافت تنوع است کسرت به هم چسبیده است منشور است تیف است رنگین کمان است حقیقت وحدت داره وقتی تاریک است، وقتی روشن شد رنگ ارنگ و متنوه است حقیقت هیچگاه در وحدت پیدایش نمییابد یعنی نه در عقیده شما نه در عقیده من نه در عقیده او نه در شما نه درید در هیچ کدام به تنهایی حقیقت پیدا بلکه در عقیده شما و من و دیگری پیدایش میابند حقیقت هیچگاه در وحدت پیدایش نمیابند بلکه همیشه در کسرت و تنوع و چندگونگی و رنگارنگی پیدایش میابند حقیقت را فقط در کستتش و تنوعش و رنگارنگیش باید شناخت به عبارت دیگر مثلا خدا را در تنوع تجربه‌های از خدا در ادیان و مکاتب فکری و دینی میتوان شناخت یا آنکه آزادی یا عدالت یا سعادت اجتماعی را در تنوع تجربه‌ها و تئوری‌ها از عدالت و سعادت و آزادی در ادیان و مکاتب فکری میتوان یافت این غیر از هم بودنهای شنا این جز یک دیگر بودنهای شنا در هر پدیده اجتماعی و سیاسی و دینی تراش های گوهر باهدی هستند که در وحدتش تاریک است. ما هیچ حقیقت رو در وحدتش نمی و در کسرت و تنوعش روشن هیچ دینی به فلسفی و فلسفهای آموزه و آموزهای سیاسی یا اجتماعی به خودی خودش روشن نیست بلکه در کسرت ادیان در کسرت و فلسفی در تنوع های سیاسی و اجتماعی روشن می‌شود. روشنی با کسرت و تنوع و رنگارنگی و گوناگونگی کار دارد پدیدهای روشن می‌شود. که در رنگاری رنگارنگیش، در تنوعش در کثافتش نمودار و آشکار شود هیچ فکری هیچ تئوری هیچ دینی هیچ ایدئولوژی به تنهایی روشن نیست فقط در تنوع افکار است که با هم روشن می شود اکمون من چند پاره از کتاب اندیشه هایی که آبستن هستند میخوانم از خود و فلسفه خود خجارت کشیدم فیلسوف از ایمان آوردن دیگران به فلسفهش میگریزد. چون هر کسی با ایمان آوردن به دستگاه فلسفی او قدرت تفکر مستقل خود را از دست می دهد و نقش فیلسوف انگیختن قدرت تفکر مستقل دیگری است. اینکه دیگری به جای انگیخته شدن به تفکر مستقل خود به ایمان آوردن به فلسفه او انگیخته شده است. سبب آن می شود که از فلسفه خودش و از خودش و از خودش خجالت میکشد. تفکر یک فیلسوف واقعی دیگری را به ایمان آوردن و فلسفه او اقوا کند بلکه به اندیشیدن مستقل میانگیزد فلسفه یک فیلسوف واقعی هیچ پیرو ندارد. فلسفه یک فیلسوف واقعی هیچ پیرو ندارد کسی که پیروان زیاد دارد باید از فلسفه خود و از خود خجالت بکشد فخر یک فیلسوف اینست که کسی به او یا فکر او ایمان آورده است. فخر یک فیلسوف به آن است که کسی از او و فکر او به استقلال فکری و تجربی خودش رسیده است. پاره دیگر گرفتن فقر نیست. نیافریدن پریدن فقر است. این نشان فقر انسان نیست که چیزی از دیگری بگیرد این نشان فقر یک ملت نیست که فکری از ملت و فرهنگ دیگر بگیرد این نشان فقر او هست که از چیزی و فکری که گرفته است نتواند چیزهای دیگر بیافریند که میتواند باد به دیگری و ملت دیگر بدهد و ببخشد از شرق یا غرب گرفتن ننگ نیست فقدان قدرت آفرینندگی از گرفته و بام کرده فقر است فقدان قدرت آفرینندگی از گرفته و بام کرده فقر است تا فقر ننگ نشود فقر به خودی خود سبب ناراحتی و عذاب نمی شود ننگ یک مسئله و معیار اجتماعی است وقتی در جامعه فقیر بودن ننگ شد. فقر عذاب می شود. مسئله آن است که چگونه فقری در جامعه ننگ می شود. در جامعه ای که فقط فقر مالی و مادی ننگ باشد مردم تن به هر جنایت و خیانتی خواهند داد تا این ننگ را از خود رفت کنند. اغلب مردم از خود فقر مالی و مادی از خود فقر مالی و مادی درده نمیبرند بلکه از ننگ فقر مالی و مادی در اجتماع عذاب, عذاب میکشند ننگین ساختن فقر فکری در اجتماع سبب دزدی افکار از دیگران میگرداد باید عقیم بودن فکری ننگین ساخته بشود تا آفریدن تا آفریدن فکری اثر رونق بگیرد باید اقیم بودن فکری ننگین ساخته بشود تا آفریدن فکری اثر رونق بگیرد فرهنگ ها راه نجات از فقر فکری وام کردن افکار یا سرقت افکار از دیگران یا از فرهنگ های دیگر نیست بلکه قدرت اف... فر... آفریدن فکری راه نجات از فقر فکری وام کردن افکار یا سرقت افکار از دیگران یا از فرهنگهای دیگر نیست بلکه قدرت آفریدن فری تفکر آفریننده از هرچه از شرق و غرب میگیرد همینطور فقر اقتصادی را با قدرت آفرینندگی صنعتی و اقتصادی و هنری میتوان برطرف ساخت تفکر آفریننده از هرچه از شرق و غرب میگیرد نمی چون همه چیزهایی که او میگیرد انگیزه آفریدن تازه میگرده. احساس فقر از فقدان قدرت تولید مهم است. نه از نداشتن ثروت. پاره دیگر. رد کردن یک تئوری لذت دارد. ولی گسستن از یک ایدئولوژی و دین عذاب دارد یک تئوری انسان را همیشه به رد کردنش اقوا میکند عقل با رد کردن یک تئوری هست که از قدرت خود لذت میبرد در هر جامعه ای که عقل اساس زندگی شد هر روز دستگاه فکری دیگری ساخته می شود چون عقل در رد کردن هر دستگاه فکری قدرت خود را می آزماید و از آن لذت می برد. یک تئوری همیشه وسیله عقل است. یک تئوری همیشه وسیله عقل است. و هر وسیله محدودیت در کار بود دارد. و هر وسیله ورای دامنه کاربردش بار بردوش عقل است. ولی یک ایدئولوژی انسان را همیشه به عینیت دادن با خودش اقوام می کند. انسان با ایدئولوژی و دینش رابطه با یک وسیله ندارد. انسان با یک ایدئولوژی و دین را نمی رد بکند. چون وسیله اونیست که آن را کنار بگذارد. بلکه با آن به هم می و در هم ریشه می از این رو باید با عذاب و تلخی خود را از آن پاره کند. جدا شدن از ایدئولوژی و دین برعکس جدا شدن عقل از تئوری انسان را جریهدار می کند بنابراین مسئله آن است که چگونه می توان یک ایدئولوژی یا دین را تبدیل به یک تئوری کرد چگونه می توانیم نسبت به ایدئولوژی یا دین خود همون رابطه را داشته باشیم که عقل با تئوریش دارد رابطه ای که یک دانشمند با تئوریش دارد رابطه انسانهای دیگر با همان تئوری نیست همان تئوری برای آنها یک ایدئولوژی یا دین تلقی می شود یک تئوری تا, تا موقع علم است که ما با آن رابطه علمی داریم یعنی تئوری فقط برای ما وسیله است و ما با آسانی و حتی با لذت نسبت به آن می میورزیم و هیچگاه خود را به آن عینیت نمیدهیم و همیشه از آن فاصله داریم ولی همان تئوری دیگر عرم نیست وقتی برای مردم حکم ایدئولوژی ها مردم در آن تئوری یک وسیله بینند بلکه در تلاشند که خود را با آن عینیت بدهند از این رو گسستن این تئوری که تبدیل به ایدئولوژی شده برای آنها بسیار دردناک و عذابآور است عقل نسبت به یک تئوری شک میورزد انسان نسبت به ایدولوژی یه پیدا میکنه. عقل نسبت به یک تئوریش شک میورزد انسان نسبت به یک اید... به, به دینش یه پیدا میکنه. شک ورزیدن علامت قدرت شک ورزنده نسبت به تئوریش. ولی یأس بیان ضعف و بیچارگی پیرو در تزلزل ایدئولوژی یا دینش هست. جان و دل را از ایدئولوژی و دین باید پاره کرد ولی عقل از آزاد و فارغ است برای عقل هیچ مانعی ندارد که یک تئوری به جای تئوری دیگر بنهد ولی برای یک مؤمن به ایدئولوژی و دین به جای ایدئولوژی و دینش که, حقی... که تنها حقیقت جهان است هیچ چیز دیگری نیست که بگو دارد حقیقت برای او بدیل ندارد که به جایش گذاشته شود و این یه است که او را از هر گونه تفکری فلج می سازد. با از دست دادن حقیقت او از تفکر معیوس می شود. در حالی که عقل در جا به جا کردن یک تیوری با تیوری دیگر به تفکر گستاختر می شود.